اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و به نام خدابند بخشنده بخشایشگر هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شبند فسبح بحمد ربک و استغفره إنه كان توابا پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار تو پذیر است